سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه هفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد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 السلام علیک ای یوحنا ورحمة الله و السلام علیه لعنت الحاضین المهدیین السلام على, على جمیع انبیاء الله و رسوله و السلام علینا و عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه السلام على الحسن و الحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باغر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر قرن السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجلال السلام على علي ابن محمد الحاضي السلام على الحسن ابن علي الزكي الاشعري السلام على الحجت ابن الحسن الغائب السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بسنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنحار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسین وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين قال الحسین علیه السلام انما خرج لطلب طلب في امت جدي أريد أن آمر بالمعروف و عن المنكر المنکر و جدي وأبي انایت پرمودی در روزهای گذشته با توجه به این فرمایش مولا الکومین عبا عبدالله الحسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه و حرکت به توی مکه در قالب وثیتشون به برادر محمد حنفیه هیام را برای همیشه تاریخ اسلام و انسانیت باقی گذاشتند که من برای اصلاح امت جدم خارج می شدم. و دیدیم اصلاح بعد از اقتصاد معنا پیدا میکند اگر تباهی و آلودگی و خرابی در یک امری وجود نداشته باشد اصلاح و بهبودی بخشیدن تحقق نمی یابد این فسادی که در جامعه اسلامی و امت پیغمبر اسلام ایجاز شده بود چه فسادی بود که قرآن پیشبینی میکرد آیاتش رو بررسی کردیم مجملن خود شخص تیغمبر تذکر داده بودن فشرده ای از روایات در این زمینه را دیدیم ناظرین راستین صدر اسلام از زبان امیر و فاطمه زهرا علیه السلام نمونه های. از آلوندگی حاکم بر مکتب اون روز اسلام رو به عرض سندن تا اونجا که امیر فرمودند فرمودن دیدم دستها از آستین در است برای محض دین پیغمبر برای از میان بردن دین پیغمبر به اقتضای زیغ وقت و فرصت چندانی تا آشورا مداریم من این قسمت بحث را تا اینجا کافی می دانم. از این جهت که قرآن بیان دارد که دین و ناس شود شد حیغمبر هم اشاره فرمودند که دین مرا آلوده می کنن و فاطمه زهرا هم شناسندن به ما که ببینید با دین چه کردن اما از اینجا به بعد به اقتضای باز فرسد یه مجملی این آلودگی را چگونه شروع کردند و در طول تاریخ دوستان دانا اگر بخواهند بیدار باشند هر کسی در هر لباسی بخواهد اون راهی را که منافقین صدر اسلام برای آلود کردن دین در پیش گرفتن اونها در پیش بگیرند ما به تبع امیرالممنین و فاتمه زهرا و آل علی چه تکلیف و وظیفهای داریم مهمترین کاری را که در صدر اسلام کردند برای آلوده کردن دین اول این بود که در لباس دین وارد شدند معروف است به درختی گفتند بنا شده است که شما رو قطع کنند گفت شیر گفت خبر یا ار رو تیشه گفت از چه جنسی، کنایه از چه جنسید گفتند از آهن گف کاری نمیتواند تواند بکنند بعد گفتند دسته چوبی هم دارد تو پس حالا می شود چون از خود من با وقتی در لباس دوست وارد می شود. مار در آستی می گردن. مار در آستین خطری دارد که انسان وقتی مار آشکارا را به عنوان یک دشمنی که از بیرون به سوی او میآید حواسش رو جمع میکنه جبهه میگیره در مقابلش می ایستد و در صدد دفاع برمیآید ولی وقتی مار در آستین مخفی شده است هر آن در خواب یا بیداری ممکن است نیشش رو به او حواله کرده و زهر را به بدن او وارد سازد به صورت از عزیزین وارد شدن به نام از دین وقتی وارد دنیای اسلام شدن آشکارا بگویند ما پیغمبر را قبول نداریم اینکه نمیشود نمی علمی بگویند ما میخوایم قرآن را به یک گونه دیگر درآوریم، اینکه این که عملی نیست تحت عنوان اشتهادی نوین و تحت عنوان تفسیر و تعویلی آلمانه و عادلانه و دلسوزانه مطالبی را در مورد قرآن و سنت پیغمبر در جامعه اون روز رواج دادن که با مدارک عرض کنم. هیچ ارتباطی با اسلام نداشت و این خط را برای تحریفگران تاریخ باقی گذاشتن و راه کردند. کردن اصل اجتهاد یک امر مسلم روشن قطعی ما همونگونه که به اجتهاد در مقابل نفت اعتراض داریم که امروز ارکا کرد به مشی اخباریون و کوریدن اصل اجتهاد و مبانی اصول فیقه به اون هم اعتراض داریم این معنی نیست که ما حق نداریم آیات و روایات را در کنار هم قرار داده و منظور و محسود شارع را به اندازه ای که برای ما ممکن است استنباط شرعی نداشته باشیم. اما آیا اجتهاد به این معنی که من اهداف شوم شخصی خودم را حتی عنوان استنباط دینی به دین تعمیل کنم اگر به شما بگویم نظر من شما این است شما اینگونه شوید خوب نمیپذیرید نظر بنده را اما همین نظر خودم را با یک برچسب قرآنی با یک شیوه حدیثی و سنتی به قرده شما بدهم ببینید در صدر اسلام در این مبنا چه کردم. این کتاب شرح نهج بلاقه ابن اول حدید معتذری. ابن اول از علمای برجسته اهل سنت معتدری مذهب حدود، هشتت 700 سال قبل مطالب عجیبی رو در این کتاب بیان می من جمله در این رابطه می گه قلتو سعالتو نقیب عبا جعفر بن محمد ابن عزیزی استادش بوده یکی از علماء که در اون عصر از شهرهای شاخص علماء یحن نه یکی به نقیب جعفر گفتم ز دادگرای سؤالی هذه از وقلت له و, و یسری روايات خوندم و به او گفتم سنت خلفا و عملی که قمراد در صدر اسلام کردن دقیقا کن دال نه ولی نیتت ادعا نیت از اتفاق علاج دفع نفس رسول الله اما ما دیدیم این روايات که پیغمبر بیان می کند نفس هست بر این مثل، اما شگونه من به که صحابی پیغمبر اجتماع کردن برای اینکه که نفس پیغمبر را کنار بزنن و شیوه پیغمبر را عوض کنم، فقال علی من حض می کنم تیکی, تیکی آشون کنم فقال علی به من گفت عویان تا الا میلن الان محتضله این مطالبی که تو بیان می نیست مگر این که همون رگریشه های معتضلی مذهبه دار این خودش یعنی که اهل سنت دو دستند معتضله و اشاعره از نظر فکری و کلامی اگر مالکی و شافعی و همبلی و حنفی از نظر سق و فرو تقسیم می شوند از نظر عقل و کلام یعنی نظر و کلام اشعری و معتضلی می شوند اشاعر عقل را میکوبند معتزله عقل را قبول دارند علتی که عشاعر عقل را میکوبند چیست چون دیدن اون مبانی را که بناست در دنیای اهل سنت به اسلام تعمیر کنند با عقل جور در نمیآید لذا آمدند با یک برچسب ظاهرا شرعی بسیار عوام فریمانه عقل ما است عقل شقاری میتواند بکند ما تسلیم خدایی ما تسلیم سعت عنوان تسلیم خدا و تسلیم پیغمبر عقل را توبیدم اما کسی که با معیار عقل میاد جلو میگه عقل من چگونه به تغییر که نص خدا این است اما عمل خلفا این اینکه تطبیق نمیکنه میگه وقتی این اعتراض رو به استادم کردم استاد گفت و گرایش اعتزالی داری یا یعنی واسعقل دخالت کردی یا برو کو این مسائل نینdish روی این مسائل فکر نکن تو پرانتز بگم برای خود بنده پیش آمد در دانشگاه شریعت مدینه با یک دانشجوی فوق ریسانس دانشگاه شریعت مدینه خبتم مگر شما در صحیح بخاری ندارید اینالله یغزب و لغذب پاطمه و یغزال رضاها تو چرا دارید؟ خبتم مگر در همین صحیح بخاری نیست و ما قطمات مه و یه من عبی بکر و عمر پاطمه از دنیا رفت ابی عبی بکر و عمر و زبنات بود اینکه مقدمات منطق و ریاضیست که مساوی مساوی مساوی، وقتی فاطمه غذابش غذاب خداست ابو بکر و عمر مغذوب فاطمن پس ابو بکر و عمر مغذوب خدا هستند. کسی که مغذوب خدا خلافت دارد میدانید چه جواب من داد. بعد از مدتی مکر و ما عرف به خدا ما نمیفهمیم چرا نمیفهمیم چون از ارتدا آمدن مبنای قفکر که اندیشه نامه اسلامی بدیران و در دنیای شیعه به صورت اخباریگری جریان بدن بدم که روح ائمه اطهار از اون شیوه اخباریگری غلی لذا اول مطلبی که بیان میکنه اینه حاصل سو تمایل به معتزله پیدا کرده این بعد شروع کرد یه سری مطالب گفتن تا اینجا ان الوان خلافه عمران علماء صدر اسلام لم يكونوا يزحفون في الخلاف الى ان من معالم الدين وان عاد جاريا مصدر عبادات شرعيه كصلاه والصوم كانوا يجرونها مجرال امور الدریبی و یزعبون لعاظا مثل تعمیر القمراء و تدبیر الهروب و سیاست الرئی و ما قانو یبالون فی امصاد حاضا من مخالفت نصوصهی اذ رع ال... رعو المطلعه فی غیرها شمطا اسمو همه رو پرجمه کنن وقت میگیره خالصه میگن میگه میدونی؟ اینا این کار رو کردن امیر ما اینکردن خلاف اون چه که پیغمبر گفته بود بله پیغمبر گفته بود علی و اینایی که دیگه ما کردن، پیغمبر گفته بود این کار کنی اینا این کار کردن و ما کانوی باعلوم اینا انجام ندازن تی امثال آزام مخالفت نصوصه که مخالفت با نصوص پیغمبر از رعو مگر این که زمانی که دیدن المثلحتی غیرها مثلحت امت در غیر اون چیزی که پیغمبر گفته یعنی چی؟ آقا دیگه چیزه دیگه شرح ابن بله دیده نه از کتابای قبیلترم حالا آقا سنویل کنم چون اینجا مفصل همه را آورده میگم آقا کی هم داره تشخیص بدهد؟ هست مثلحتی را بر سر از اون تشخیصی که پیغمبر داده این طورینه به پیغمبر هست یا نه؟ اصلا دین یعنی چی؟ یعنی تسلیم امر خدا شدن چرا ما مسلمانیم؟ چون تسلیم ها رو پردگاریم سریح قرآن هست در سوره نساء آیه 65 اون نفسه اینا اومدن نفسو کنار زدن چی میگه؟ فلا و لا يؤمنون حتی که فيما ما شجر بينهم ثم لا یجدو في أنفسهم مهرجن مما غذیت و یسلمو میگه فلا و لا یؤمنون ایفه هم به خدای تو قسم این مردم مؤمن نخواهند بود مگر اینجوری بشن. که تو اضافت کردی نظر دادی یه دروه تو دلشونم باکی نشه که چرا پیغمبر اینجوری گفته و یسلم و تسلیم ها و تسلیم محدث توی پیغمبر بشن اما عنوان یک دانشمند اسلامی میگوید مثل مسلحت را در این دیدم که خلافان که پیغمبر میگه عمل کنند خبا نمونه هایی میگه خدا برسن داری گریه ها کرد اسلام و از اون طرف باید هرچی انسان عمر رو داره من که دلتاتی که با جوونا داری داریم بیشتر این از من شنیدن به اونا گفتم گفتم به خدا قصم عقیده من اینه اگه هشتاد سال قوم کنم تمام اشدارسام تمام وجودم رو برای دفاع از مطرح کنم، مطرح کنم به اندازه یک لحظه زحمت اطارتی که اهل بیت از کربلا به حساب کشیدن نمی‌سواد خدمتی که به من شخصی و به همین شماها کردین، شو اگه نبود می‌خواستین این بشه. چه کار در اهل تا این نقشه رو نقشه بر آب کنن؟ چه کردم؟ سینت میگه بذار سیر بشم. سه تو خرابه بگذارم شش ماه رم رو دستمون میگیریم پیرمون درم جوانمون درم به جایی رسیده دیگه باید یقم اونو بدریم، دیگه باید داد بزنیم، بابایی ارخانه نبود، مسئله از بین ببینید دامت چی میگه علا پراعو ابن عبل حدید میگه استاد من به من گفت ها نمیدینی اونا رو یعنی در صبر اسلام کیفه نسل علا اخراج عمیب پیغمبر نفس سری داشت که عبوبت و عمر در جیش اسامه باشند. همون روایت معروفی که پیغمبر شامت ابن زید رو پرستاد فرمون لعن الله من تقل لفن جیش اتامه پیغمبر سریع فرمون لعن الله کسی که کس از جیش اسامه تخلق کنه لحنت در اون عروبت برگشتن تخلق کردن نسل پیغمبر رو عمل نکردن حالا می اصدادش چیه گره علا ترا کیفنست اخراج عدیبت و عمرتی جیش اسامه ظلم و خرجا و اندوسا خارج نشدن بیرون نیومدن لما رعا یا انتی مقام اما مسلحتن لدولت و المله دیدن مسلحت اینه که خارج بشن صلاح در که نباشن در اون دسته ولو پیغمبر نست سریع داره که باشن یعنی پیغمبر مسلحت و امت را نمی فهمید. اون دو تا فهمیدن مگه غیر از اینه آقا چطوره ما حسین صد شباله این نکنه علی علی السلام اگر میفرماید فرمایید استقان در گروه خارده چش اون زمان اگر علی مثل کربلا درست میکرد اونا رو مثل کربلا می کشتن کسی با این اون نخش رو نخش بر آق کنه زمانی که مناسب شد زمانه ما حسین بود وگرنه نه این ها می ریشه دین رو بزنن که بعد از 700-800 سال جرعت کرده آشتارا بگه پیغمبر گفته از مثلحت این است اما خلافا حیغنبر متوجه نیست مثلت اینه به نفع دین از ما بمانیم تو جیش اسلامه نه شما به مثلت مقام خودتون بود سری این خودتون بود ولی خراب کردن دین بود اما در غالب لباس دین وقت کانه رسول الله یو خالف و به و پیغمبر مورد مخالفت قرار گیره خودش میگه پیغمبر مورد مخالفت قرار که اینا یعنی اونا پیغمبرو مخالفت کردن و اوه و پیغمبر زنده بود و سی امثال ظالم در این جور موارد چه وقت چی میگه ولای و نکره و پیغمبر هم اشکال نکرد و ندارد نداره شما مصلحت میدونید خلا کن که من میگم عمل کنید عمل بکنی این دیه اوه اینجینه که جلوبیا صاد کجا میرسه اجرسه بگید همینجا همین خیلی ادامه داره کتاب نرسیدم فردا می کنم جلده دیگه شم می کنم همینجا یه نمونه بگم اگه بنات به این صورت جلو ها کار به کجا می رسه ابن حضم اندلوسی مقیه معروف دنیای اهل سنت خیلی هم گذنگلوک کتاب ها داره آثار داره انقدر براش احترام قائلن. بلا تشریم علامه حلی در جامعه تشجیر که ما چه احترامی بر کتاب المحلات کتاب فقیه مهمه جلد ده صفحه چهار و هشتاد دو میگه خب انسان میتونه اجتهاد کنه به این معنی دیگه اون چرا که به سلاح دانست باید پیغمبر اونجوری سلاح ندونسته باشه با اجتهاد دیگه آدم کارو میکنه دیگه باید مشته شد هر که اشتباه کرد درست باشد دو اجر دارد و اگر غلط باشد یک اجر دارد ابن ملجم چون مجتهد بود به اجتهاد خود عمل کرد نزد خدا معجور است و اگر ثابت شود در کشتن علی خطا کرده با یک اجر را دارد الله اکبر کنم مدرک میخونم براتون میدونید چرا علمای شیعه فریاد میزنن استاد می میفرمودند گاهی می رفتیم دیدن مرحوم علامه یمینی رحمت الله علیه یه اتاقه که اون بالا نجفت داشت توی خونت نشسته بود برای نوشتن مثلا می دیدیم الان زرد کارشه بریم بالا حواسش پس می ما خواهی می یه مقداری فراغت پیدا کنه یه وقت می دیدیم صدای ناله از اتاق بالا میاد می رفتیم می دیدیم قلمو گذشته کنار کتابو گذاشته کنار زار زار عشق می دیده می, تو می وای که با دین ما تو که میخواستن بکنم. آخه برادر من چرا رو نزنین. کدوم مکتب کدوم مذهب کدوم مرام کدوم عقل و اندیشه این رو میتذیره که اگر من اجتهاد کنم علی را بکشم بر فرضم اشتباه کرده باشم یک عجر دارم این مکتب بادهش رو بکن همونطوری که ما حسین فرمودن ازبولیت الاسلام به را مثل تموم شد چه پیریندی کردن چه دینو به چی صورت موقع خدا برای که رسواشون کنه دقت بکنی این در کتاب المحلق جلد ده صفحه 682 کتاب دیگری دارد السسل ملل و النحل اون ملل آنی که بیرون خوندم مال عبدالکریم شهرستانی بود این السسل فلل و النحل مال ابن حزم صفحه 161 میگه فاطله عمار چون مجتهد بود یه اجر بیشتر نداره یعنی چی یعنی امدن میخواد مثل پیغمبر رو زیر پا بذاره بادیه چیه پیغمبر فرامو بودن که یا عمار تسلل کرده عصون باقیه اما ترا یک گروه باقیه سرکش می پشن. معروف بود در بین اومد که تسلوهو فعتون باقیه او را یک تأیه باقیه خواهند یعنی هرکت اما رو بکشید سرکشه این سریع پیغمبر گفته بود در جنگ سپین اما را شهید شد یه دفعه تو سفاه معاویه این صحبت پیچیده شد اه اما که کش نشد هم که فرموده بودن هر که اما رو بکشه تا این واقعی هست معلوم ما بروه سرکش باقی هستیم پس با علی نگنگیم دست از جنگ بدارن ما دست دست دامن امراض کرد امراض و شو امرراات های پس و پرده ها رو که نگه میدارن برای روزهای مایعنی که ق های ساافانه یه خودشونو برای تصاد مکتب به کار بگیرن یه دفعه امر اومد اوبت ببینید زمانی که دشمن دیدار دوست نادان دشمن دیدار ماامه و امرراه چه کردم یه چوقندانی کرد ای ان کی باعث شد اما بیا تو میدان کشته بشه علی اگه علین جنگران نمیداد که اماار پشته نمی شد. پس واسط اماار علی به ای باقی علی هم مرزو عوام احمد گفتند گفتن راست میگه شمشیدار رو شروع نشروع کردن حضرت اومد یه سخنرانی کرد مرحوم ثقافی در این الگاراتش حدود 1300 سال قبل ناله علی رو در اونجا بیان میکنه علی گریه کرد ناله کرد داد در دو مرز و به خدا اینقدر لا فکری در بیایی کمی فکر کنید یک کمی بگنید یک کمی بیردشید اگر اماری که اومده از من دفاع کنه من قاتل رویم پت همزه سید شهده که در جهی اوحود رفت از پیغمبر دفاع کنه شهید شد پت باطلش پیغمبره نفهمیدم. چرا؟ سوم میگه فکر نکنین که هیچ فکر نکنه اینجا اینا برای که این زمینه ها رو بزنن چی گفتن گفتن تازه اون کهستون که انمارو کشته اجتهاد کرده اجتهاد هم اگه اشتباه کرده باشه خب یه ادله‌ای که جای خودش بابیه پس بنده اجتهاد کنم مردان خدا رو هر دیوان رو بکشم پس ادرم دارم این دیگه چه دینی می شود اما حالا ببینید در همین الفصل جلد 4 صفحه 161 بالا رو یه میگه پایین میگه در عثمان نمیشود اجتهاد کرد چون باکتی جنگ نداشت و در زندگی زنای محسنه نکرده بود و مرتد هم نشده بود لذا اونهایی که عثمان را کشتند قاسب و ملعون هستند کرای عثمان حق حد... ندارید اشتها کنید رو بکشید ولی برای علی و عمار حق دارید اشتها کنید علی و عمار رو بکشید اون وقت به منم بگید چرا حرفا رو اه؟ در طول تاریخ بگن بنویسن حق رو پشت پرده نگه دارن، خون به دل آل علی بکنن زهرا و علی من جانشون رو سر این کار بگذارن حسین ما سرشو بالای نی ببره منم راحت بخورم و بقا و ما حرف نزنم ای وای یارو باید همون گونی که امام حسین روز آشورا فرمود وی حتی میآشی از آل ابی سفیان بعد بگو شیالان آل ابی سفیانم میخوان کار دین رو به اینجا بکشانن لذا سر این مطلب رو تا به کجا میرسونه ابن حبل العید از گولوف سادت میگه استاد باز, باز دا دا آخش آدم رو با گفت زای کههای بعدی عاشش میدن آدمون میگه پیغمبر ولی شان گفت مردم شما از من به سر پیغمبر خودش هم به کجا یه دروغی رو از سهی بخاری نرمی کنه سهی بخاری این حدیث رو نرمی کرده که واقعا از طباس دروغه خوبی این جسی میگه اونقدر یه چیه بگه پیغمبر سال اولی که از مکیومت اومد به مدینه پسل باروری خرما فرما درخت درهت این گرده های درهت نر رو باید بتکنن تا درهت بارور بشه فیرسی که شاورزا تو پاک دارن هی شاپار خبتن آقا این کار رو نکنیم که فرما محصول نمیده داخت مراده که خدا هست کرد خدا هست میده نخاب نمیده اونا اون سالی این کار رو نکردم هیچ محصول نداشتن اومدم تیش پیغمبر خبتن چی شد؟ پیغمبر گروه میگه شما از من این مسائل بهتر میترمید اولا آقا پیغمبر پیغمبر خدا همه یه بچه عرب بود یا نه؟ یه بچه عرب فرما رو یا نه. خود پیغمبر اگه عقیدش این باشه مگه تو قران نمیگه سنت الله ولن تجدلوا سنته تبدیلا خود پیغمبر اختلاف این رو گفته خود پیغمبر میفرماید از قران لیس للانسانه الا باطء اینا برای ای چیه برای حرفای کلامی بزنن بگن اگر خلفای کارایی کردن که پیغمبر خلافش رو گفته بود برای اینکه پیغمبر هم اشتباه می‌کرد اینا بعد جواب بهتر می‌فهمین یا زمانه اول شده یه چیزایی الان ما می‌فهمیم اون زمان پیغمبر متوجه نبودن ببینید چی میگه؟ میگه لیسر رعیفی نزوله ها در اینجور موارد نیست مگر این که اگر اونها عمل کردن گفتن ما خود پیغمبر چی گفته؟ حتی خال لهم تا این که پیغمبر و این مردم گفت راجب این قضیه چند ست باید کردم انتون اعرفو در امر دنیا کن و انه و در امر دین کن. حالا چه زرنگی میخوان در این قضیه انجام بدن دفت کنید؟ اینان امروزه کتابایی که یه از اشاره میتونن اینان امروزی هفت ده انتون تو رو به امر دنیا کن شما تو امر دنیایی خیلی جاست. با بامعرفت ترید، آگاه ترید من در امر دین از شما داناترم مگه دین نباید دنیا رو اداره کنه روزنامه بیشبنده موجوده در مقاله درشت یک سال و چند ماه قبل جا شد اسلام در طول تاریخ نشوند داد که نمیتواند تمام نیازمندی های دنیوی و اجتماعی ما را تامین کند برای دستورات شرعی پردی نماز روزه و خمس و ذکات اینا رو دین گفته انجام بدیم اما برای شعون اجتماعی باید از مکاتب گناهون دنیا و فکر خودمون کمک بگیریم این مقاله پیشونده موجود و نمونه های دیگه کتاب آوردان می کنم براتون نویسنده کتاب شهید جاوید حالا اینو دیگه ازمالا اسمی برم در چاپ شنده اضافاتی که بعد شنزه هم چاپی که بلدی میگم تا در چاپ شنزه هم بشه کند تا بعد شاپ شده بماند در چاپ شنزه هم در اضافات و منعقاتی که بر چاپ شنزه هم دارد میگه اگر علی پرمود سلونی قبل انتبخدونی و انا اعرفو به طرق سما من طرق الار یعنی علی هرکی رو بلده یعنی فقط اونچه که در رابطه احکام از آسمان میاد مسائل شکیات و نماز و روزه رو از من سوال کنید مسائل دنیایی رو خودتون پیش ببرید اگه بناوش ما دین و اینجوری بشناسیم با خب همین میشود آقا امام حسین گفت یزید نباید حکومت کند میگه امام حسین کی مساله متوجه نیست امام حسین فقط شینه بگه چه شکلیام به چه صورته اما امام حسین از اون طرف یزید تشخیص میده امروز مصلحت اجتماع به چه صورته باز میاره بالا میگه و چند ست رو باز حض می کنم فقط از بقت اصباحا و ترک کثیر منن نصوصه نبید اجتماع کردن صحابه اجتماعی یک پارچه علا ترک کثیر منن نصوصه زیادی از نقد های وارده به دین را ترک کنند لما راو المصلحه بی زاوه دیدن صلاح اینه بعد همدیگه شفاف کردن گفتن حالا که ما تقلام رو هم دیگه نمی‌ذیم با هم شروع کنیم به این نتیجه رسیدیم مصلحت در این است که ما بیاییم فعلا این امر پیغمبر رو ما کنار بزنیم یه جور دیگه عمل کنیم تا اینکه و اما در صفحه 84 جلد یازده و دوازده بخش دوازده هم جد یازده و دوازده بخش دوازده و اما مخالفت هم لهو فیما خبه اما این مخالفت هایی کنا کردن با پیغمبر خبه محض شرع و دین به خاطر دین بود به خاطر شریعت بود و لیست به به امور دنیا و تدویرات ها این انگلیس چه کاربردی خاطر مسائل دنیایی بود اصلا صلاح این بود که اونها یک سلسله امور را که پیغمبر اونجوری می‌گفت اینا اینجوری عمل کنند بعد میاد من اگه همه رو وقت شده کنم تعجب می‌کنم ضمنیه صفحه 88 میگه و نه ما می‌دانیم ان العرب لا تطيعو ولا تطرفوا عرب نه پیغمبر را اطاعت کرد نه ترک اطاعت کرد یعنی چی اگه اطاعت کرد ترک اطاعت چیه؟ اگه ترک اطاعت کرد و که اولو انده انسو تهم ان نفس سچاروز غرب یادتون بیاد پیغمبر فرمودن در میان شما کسی است که به خاصل تعلیلها ها خواهد همان همانگونه که من برای تنزیل جنگیدم اینا من کن من یو و علا تعلیله کما تو علا تنزیله یاتون از کتابه مسند احمد انبل براتون کندم و منابع دیگه حالا چی میگه اگر اون حرفی اینجا بیاری یه که میدونید اینا نهی ای که اطاعت نکردن اینا تعویل کردن پیش خودشون نفس را ولا یا میتران نفس نفس منکر نشدن و قالو اینجوری گفتن امنه و النفس بله نه اینه ما مخالف نیستیم که پیغمبر گفته ولا که نل حاضره یرا مالا ما که الان تو این زمان حاضریم یه چیزایی میفهمیم که او که این زمان نبود این چیزا را متوجه نمی شد پس حالا بهتره که ما به تشخیص خودمون اینگونه عمل کنیم پس اینو اون زمان کردن و اینگونه گفتن تا چه حج جلو بردن یه نمونه برای تون بگم ببینم چقدر این ها واقعا جای ترسط و دستوزیه در همین کتابم هم می از کتاب رفعیات اعیان تاریخ عبیل صدا تنزل اممال متقیه هندی تاریخ یعقوبی میگه وقتی که مالک بنویره خود دقت بسا ما اشعار در رو به کجا میرسونه مالک نوایره، اومد با که من که من قدیر بودم من پیغمبر نمی‌دم در عالم متداعیانه پاکا مورد قبول پیغمبر خودش فرمود من کن تو مولا حاضر یون مولا من ابوبت قبول ندارم یک کمی بگو مگو شد و قبیلهش بیرون مدینه بود و تو قبیله به قبیلهش گفت زکات رو به ابوبت شما او رو با حاکر اسلامی قبول نداریم تا ذکرات رو به او بدیم هم وقت با مشابهش مشورت کچه کنیم بباید که متصین اعتراض رو کافه کاری برخورد خورد جدی با اینها داشته باشیم اینا به درستان چیو اتفاق کنیم خالده نوبیره خالده نوبیره هم قصاب بند معروفی سه جوری خوب بزنه و باادر خاصی هم داشت یه گروهی هم باو دادن شمشیرها آویخته وارد قبیله مالکه بنو گروه بود. مالک بنوبیره شدن غروب روز ماگه اومد جلوی بابا نماز میکن. آروزه ما نماز نمی‌خونیم ما روزه می‌گیریم ماشاءالله لا اله الا الله می‌گیم ما معتقده به من یه تعول با شخص عبات دارم شما همه یک برادری شیلان ندوسید نمیوا اینا رو تقسیم کرد تو قبیله سرداده رو 5 تا خونه این چهار تا خونه این 2 تا خونه این آقا شام بدید قزیه انجام بکنید خود خالد بن نوبریه که سردرسته لشکر آقا بیا خونه من فردا تو دسته جا میدیم پیش ابوبکر بحث می‌کنیم ببینیم به نتیجه می‌رسیم یا نه با خالد بن نوبریه رمزی با بعضی قرار داد بعد اونایی که تو خونه سرام قبیله بودن که مشتشاپ خوشید سر صفونا رو ببرید خود خالد بن نوبریه مشتشاپ خوشو سر مالک بن نوبیره رو بری هر منده هم به همسرش تجاوز جنسی همی کرد این همه نوشتن فردا جمعیت اومد تو مدینه بلا این چی میگه ای داده بیگه فردا جمعیت اومد تو مدینه خب این چه وضعیه این چه اسلامیه دمیمی که گفت حتی عمر رو سیاست مداری تن شد اومد جلوه ابو بعد داده بیاد که تو مسجد چه ببینید چه کرده از خالد قال عمر بن الخطاب لأبي بعد اینا از این کتابا قندم بعد از این کتاب حالا براش میگونم قال عمر بن الخطاب لأبي یا يا خليفه رسول الله ان خالد قتل رجلا مسما و رجلا من راثه من يومها یا مسلمان رو بیگنه آخشته و به همسرش تعذی کرده فکتب عبوبک الان خالد و عشقه به او عبوبک نوشت خالد و خاص آور و به او گفت چه می کنی فقال خالد یا خلیفه در رسول الله امنی تأول تو و اصل تو و اقتع تو من اجتهاد کردم تعویل کردم در اجتهاد با یادان خطا می کنه هم به هر اصابت میکنه. کنه رأی من در مصلحت دین این بود که با مخالفه قال ی اسلامی این گونه عمل کنم که ناموسشون هم بدره تو و راست دیگه پس آزاده آقا آتش نی گراده وای اگر برخی مقرضین که فهمیده ببود. تقل او را عربک این نقالدن تزنا فرجم و عمر زنا کرده سنتارش کنی. قله ما کن سنتار. نه من سنتارش نمیکنم. فا این نه و تقبل ای اجتاد و احتر با شاه چه خطا کرد با تو اجتاد تازی سوابق دارد. لذت نکنی. چون کشش کرده شاه کرده. قله فازل پتو عض کن. قله ما کن دو عض می دو نه من شمشیری را که خدا برای خیرته هست تو غلاب نمیم یعنی خالب چقدر داره بنده شمشیر خداست برای دین خدا و یه مستشد نباید بگی این اسلام دین زور است دین شمشیر است دین است خب اینجا علی چه باید بگه اینجا این خدا من از این مردم بگیر یا به من مردمی بهتر از این مردم بگی امام مجنبای اینجا با چه بکنه؟ دشمناسی تراره میکردن حالا همه ادامه داره بکنن دارست دشمناسی تراره میکردن دوستا چه کار میکردن محاویه بعد از گریان سلح امام مجتبا و روزا مسلح شد به نظر تاریخ قبری حالا محضیات حتی طور منبر فیغمبر علا رقم این که فیغمبر بالای همین منبر تو مدینه چی گفته بود مردم دیشب در خواب دیدم میمونه ها از منبر من بالا می میرون و این آیه نازل شد بعد. و ما جعلن رویالتی ار ایناک الا فتن تند نافت و شگرستن مل اونا فلغرهان حتی فخر غاضی متأثر در کتاب تفسیر مفاتی حلقه زیر این آیه اعتراف میکنه. این این بنیومیه بودم پیغانبر رفت منبر دو بنیومیه بعد از من میخوام بیان بالای این منبر که همون میمونایش که بالا منبر میره. هر وقت بنیومیه رو بالای منبر من دیدی بکشیدشون این پیغانبر فرموده بود محاویه مخاطبه بگید ببینید علا رقم پیغمبر شما چه میکنن؟ نه تنها میرم بالا منبر میشینم مردم منو نمی میرم بالا منبر علیم رو هم لعن با من لعن میکنن. کنند از بالا منبر شروع کرد سب علی آقای ما مچکبان با آقای ما حسینم تو مسجد بودن. این مدر جبرو بر علیه اهل بید درست کرده بودند که امام مجتبی پا شد اصطاد از این نحوه فرمایش امام مجتبی در قسمید مظلومیت حتی چقدر بوده امام مجتبی پا شد اصطاد پرمود مردم معابیه رو منبر جد من که در من را کرد من از شما آن نظر میخوام ولی مردمی که فکرشون مرده است اندیشه ندارن مگه میان بررسی کنن امام مجتبی پرمود مردم از شما نظر میخوام علی من پدرم علی بود مادرم زهرا جد ما پیغمبر عموی ما حمزه سیند شهدا جعفر طیاری خانواده علی و ما اما معاویه پدرش ابو سوفیان بود مادرش هنده بود اون شعر معروفی که داستان پسر هند مگر نشمیدی که از او و سکت او به پیامبر شرفت پدر او لبودندان پیامبر به شکست مادر او جگر ام با پیامبر بدرید او به بنوحت حد داماد پیامبر بگیر پسر او سر فرزند پیامبر ببرید در چون صلی الله علیه و آله نکونی شرم اباب لعن الله یلدن و علا آل یزید آقا این خانواده خانواده‌ای هستند که معاویه باباش ابو بود که با پیامبر جنگید و پیشانی پیغمبر رو شکر. مادرش هنده بود که جگر همزه سید و شهدار رو دارید خودشان که با بابای من در افتاد حالا شما بگید از این دو قام هر که بدترد لعنت بر. حالی مردم باید چه کردن؟ کار باندارتون در, در شام ساخته شد به نام مسجد ذکره شرابش میگن مسجد ذکر میگه خطیب نماز جمعه یادش رو قدید رو در خطبه ها لن کنه. یکی از معلومیم گفت جناب خطیبیات درخت ها به شکرانه این تذکر یک مسجد میسازم ازشونی می درانزه ایک رو ده چرا؟ چون مبانی اندیشه رو با این امور به اینجا رسوندن خالد میاد این کارو میکنه اونها به جای این که بگن وا اسلام ها بگن تا اجتحاد کردیگه بر مبنای اجتحاد کتابی که دو سه ساله در تهران چاپ شده به جزه بدید من کلشم بوشون در معلوم نشه کار و اشخاص و نام ندارم نه تشجو اسلام خالص و حق محضر و نه تسنن نه اشعریت حق مطلقه است نه اعتزالیت، نه فقه مالکی نه فقه جعفری نه تفسیر فخر راضی. نه تبا تباری طبع نه زیدیه نه وحاویه نه همه مسلمانان در خداشناسی و پرستششون آری و بری از شرکند و نه همه مسیحیان درک دینیشون شرکا است. دنیا را حوییت های ناخالص پر کردند و چنان نیست که یک شو حق سریح خالص نشسته باشد و سوی دیگر ناحق قلیز خالص یعنی هرکی حقیقت از دیگر آنید از سخت نگیرید یه همه حقیقی که اون زمان گفتن عرب نه اتاعت کرد نه ترک کرد نه اخر این یورم بود اون بود و وقتی این موروانه توجه دارم که اگر بگن معرفت دین تا خود دین اما انایت داشته باشید به کجا میکارد برسونه آیا اگر حیات مبارک تیامبر طولانی تر و یا وقایه تاریخی مهم دیگری در طول تاریخیشون رخ می حجم قرآن از این که هست بسیع افزوندر نمیگرش یعنی یعنی پیغمبر به اندازه فهم و تجربه خودش قرآن آورد اگه پیغمبرش 23 سال مبعوض شد 6666 آیه داره اگه 66 سال میشد 12000 آیه میشد چون پیغمبر دیگه بیشتر چه تجربه نکرد این حضوری چی میزنه؟ همین نویستن به کتاب دیگه برای این اینکه حالا من باید این کار رو مو کنم میخونم به ری بید کنار هم جان کندن میخواد کنار هم قرار دادن میخوااد دقطت میخواد بعد یم آ این کجا میخواد سر در بیاره؟ دقت بفرید ت اینجا یه دیگه میکنم حلایت بکنید من از دشمن گله نمی کنم. خدر ما دروت شما دیده میکن. دل شددانی بددللا که از امام ما حسید شما گلو میکنن چقدر در بچه ها در اینجا مردم آقا طام می روز گزار شورا و زیپ. اطعام کنیم اطعام می کنیم گذاشتو را چقدر برای ذهن جوانانمون کار می کنیم که من در همین تهران تا چه رسه براتون قردستان و زاهدان تو بخش ترکمنستان بهتون نشون ترکمنزه را بهتون نشون میده. دم شیعه برای چهار تا کتاب صفت کشیده توی کتاب کونه تا نوبتش برسه کتاب بخونه وقتاق می یا حسینگ کار کنیم دل بیدیم پس کنیم جدوه بدیم دست به دست هم بدیم شکالا که متوجه بشین این داخل در خارج هم من هم در اروپا دیدم هم در امریکا دیدم لح لح می شما رو به خدا این اطلاعاتو به ما بدید ما نمیدونیم. در حیات مبارک پیامبر خیلی ما احترام بله حیات مبارک پیامبر طولانی تر می شود. و یا وقای تاریخی مهم دیگری در طول عمر ایشان رفت میداد، حجم قرآن از این که هست بسید افتونتر نمی داشت. حالا کتاب دیگه کامل پر شدن دین لازمش کامل شدن شخص است یعنی دین رو پیغمبر داره خدا نمی آورده چون پیغمبرش کامل تر می شه دین کامل تر که دین خلاصه و اثاره تجربه های فردی و جمعی اوست پیغمبر تجربه شخصی کرده و جمع که دورش گرفتن به کمک جمعیت هم تجربه کرده سبته کافی این کار بکنید این کار رو بکنید اینک در قیبت پیغمبر حالا پیغمبر رفتش کار کنیم باید تجربه های درونی و برونی پیامبرانه بحث یادن یعنی پیغمبر تجربه می‌کرد چیزایی رو و حالا باید ما این کارو بکنیم یعنی منم یه پیغمبر میشم. پیغمبر اینجوری فاطمه گر عمر نگوسمت اتان محزلتان فی زمان النبی و انا و خردم هو نگوس پیغمبر نگفت لا و پیغمبر گفت حالا ولی اینکه انجام دادم اما ما فنا رو در یه چیز دیگه می‌دونیم ما میگیم پیغمبر از سر تجربه اون زمان اینجوری گفت لذا عیناً در بحث با خود بنده این گفتند گفتم که شما چی فکر می‌ذنی پس معناش اینه که اگر پیمانبر 14 بدرنده رو گفته دست دو بار غلط بشه امروز حق نداریم بله گفتن بله, دفتان بله؟ دفتان این به خاطر اینکه تشخیص اون روزه بود بابو امروز ما دفتان اون چه گفتم پس امروز تشخیص این بود با حضورم باز بکنیم امروز یه لزومی با کنیم. این و و که لزومی نداره با حضورم باز بکنیم این پس رفتم از اونجا در میاد شیر و میفا و دوو عشقو میگفتیم این چه میشيري خدا چند سال قبل اون غذافی دیونه سر صدا یاد انداخت که آقا فاهر رمزون شده بود تابستون من یادم این بلگشت آقا مگه اتبینید حالا اجتحاد بی این معنی یعنی تعبیل یعنی سرد رعی مقدم چینی کردم آقا اسلام میخواهد مسلمان ها سر باشن یا نه بله اسلام میخواهد مسلمان ها سر باشن پاکستان روزه بگیرن نشاط کاری کم می شود یا نه. حاکم نشاط کاری کمی میشه. حاکم اگر پاکستان روزه بگیرن نشاط کاری کم بشه، تولید و بازدهی اقتصادی پایین میاد. تولید و بازدهی اقتصادی پایین بیا همه سرموناتو شرم مشکل میشن. پس من فتوا میدم، پاکستان بخورید تجارت مسلم بگیرید. سکر ساداتش برای اسلامی بلند شد. این مسکر بودیا چیه؟ آقا ببینید یک پس تجربه های؟ زرگی نسید تجربه های جرونی و برونی خیامبرانه بر خیامند و بر زنا و تربعی دین بی افضایند تقصد فرمایی؟ بر و تربعی دین بی افضایند بیان یه چیزایی رو قبط چه میدان؟ بعد میاد در تقریه صدرشتی این کتاب مثلا بین رو بیان میکنند در صفحه 123 به شاه دهلوی اشاره میکنه شاه ولی الله دهلوی چنین که پسر او کتاب تحفه اسمع الشرعیه نوشته که تحفه اسمع الشرعیه بدترین کتابی که در رد تشیع نوشته شده تحفه اسمع الشرعیه شاه ولی الله دهلوی روح سخن شاه ولی الله دهلوی که گفتار و رفتار پیانبر با خود فقط ارزش الگویی دارد برای اون نیست که همه جا و در همه نفلها تابق النعل نعله به نعل عملی شدند اونها مسادیری هستند از اصول کلی و هر باید مستاق اصول کلی را خود بجوید و بیا دستورات پیغمبر داره یه نیست ما تا بخونده علی برناد عمل کنیم پیغمبری که داریزه به تشکیس خودش اون زمان برمون براده یه عقصه تازه نیست از ابن بردید برای خونده محتاجش رو شکته این ها گفت دستاد برنادید دیل از این بود آقا اینو شکل اروزی شد متجدد ما آبانه شد شما تو تاریخ قلصفه ی یونان نگاه کنیم کلبیون و ایفیگوریان چی میگ می گفتن آقا باید بیخیال بود بزن در طب بیاری که اون هم آدمی داره درس خونیم کلاس بریم نه زحمت بکشیم نه ولی این آدم خوشو بکنه ما ولی خوش فکر درویم مگه اومانیستی و نهریستی امروز دیگه نمی‌ده نسخه جدید متجدد معاوره‌ای فلسفه تیگری و بنای نهریستی مگه این نه. است بیاری که اون, هم اون به سال قبل به زای حالا اما سال بعد من به ما یاد دار که درست پیغمبر اونجوری میگفت ولی این چیزایی رو ما میفهمیم که معلوم نیست پیغمبر اون زمان بوده متوجه این مسائل بشه نظامیات نمونه دیگری راجبه همین خواهد که کندن چی به خورتت اجازه نمیده این مجلده 18 و 18 شرح ابن عبدالحدید قسمت 17 اوم سفحه دویشت و دو قصد خالد ابن ولید و قطرهی مالک ابن نویره ذمواجاعته امراعه در ليلته ديما قضيه خالد و اون قضایا تلا بر میگه و ان ابا بر سرك اقامه الحد عليه بله ابو بر حد نزد حد كرد اون جنا كرده بود آدم خسته بود حد نزد و دعما در زمانش اين بود ان هو سيف منسوذ الله اور شمشير خداست بچه‌ها منجو شمشیر زن الهی رو که نباید الله تعالی و, و حد زنا عموماً، یعنی که خدا واجب کرده، باید حد زد. باید حد انجام داد. و ان امر نفسه و مرجو الشك و وقت کوس جنب باشه، بنرو، قد المس المؤمنين گوشه سری قرآن اجاب واجب باز اینجا اونو در جلد دوازده گفتم این در جلد هیده میگه من به استادم نشو میده نبل هدید به گاگاه یک که سوالی دیگه توی محفظلی یه با کار داره میگه به استادم نشو اینه چیه غازی الگزار چی گفت عجاب و غازی الگزار فقاله ان شیخنا ابا علی قال استاد خود ما که ظاهرا ابلی جبائی دوستانی که درشته در کلام درس خوندن ابا علی جبائی یکی از متکلمین معروف فقه و که برای اونا خیلی متفکر تحلیلگر این مسائل میگه او گفت ان الذت ظهرت من مالک بن نوبیره آقا یه ایده پیدا شده بودن حقوق رده شده بودن یعنی هی داشتن نسبت اصلاح مخالفت نشون میدادن مالک نوبیره اسلام رو رد چرا رفت کرده بود؟ که نماد می کنید که شهادته می گفت می الاخبار حالا اینجا اخبار است. در خبرها اومده بود که اگه بعد از منزول رده پیدا شد با اینها برخورد کنید اینجا داره مالک ابن خلاف اسلام عمل می کنه پس باید اون کشت مستحف زنشان با مالک نو بیره زنا می کنه رده نیست اما خالد ابن ولی مالک ابن نو میگه ابو بحر قبول ندارم این میشه گروه رده این چیه؟ بازی بازی, بازی. در خودش میگه خب اینا لازمه اجتهادی بیگه اجتهادی بیمه میگه لعنه جاعت الاخبار انهو رد در صدقات قومهی علیهم برای که در خبرها بارد شده در تحاریز داری مالکه منو بیره زکات قوم را به ابوبک نداد لما بلد اون مدر رسول الله وقتی شنید پیغمبر مرده نزاشت صدقات را بیارن بدم به ابوبک کما فعله سائر و اهل رد و صحب قلقه و صحب قلقه بقیه هم هستیم پول و ابوبک پدرتان باید در آبو به باید تحسی کرد بعد؟ این قائل قائل سقدانه یسلی اگه چه نماز می بخونه ما نماز نمی خوام ما قولشو می خوام عیناً ابو معاویه چه در نقل تاریخ خبری بالای منبر در مسجد کوفه بعد سلطه بالما ما دارد. اگر از شب با امام حسن این حرفو در کرد این خبری داره از روی مدرک درست می کنه چون بالا منبر بعد از جریان امام مستور چی گفت گفت مردان من با علی جنگیدم پسرش هم جنگ و ادامهداد کار به اینجا رسید. برای ایندم این نماز بکن جو کهید من کار میعرفانم خودتون میدونید فرای این بود که من شطان شما هجییرسیید پیر هجی وسیید میخواید اماز بکنید بخید نکنید. نه پذیر روسی همون جنگ آ هم هم چی را. ماتا اوخریتر تا دووره تکسی در میآور جن ها آ میکشید. اما نوبتذ پسرش برسید دیگه چی با؟ لبد ها و مبل مالی که فلا خبر و جا اولا وحیان، نظر و همه اون فکرشون این بود مثلا یدین بیال به سر از بقیه بود آشکارها میگو اونا زرنگی میکردن لابلای فرده میگوندن حالا این اون خطه انشاءاللت تاسوه و آشوره رو احتساط میدن مال این خطیه ها تاسوه ها از ها بعدی عبدالله و وجود مقدس قبل فضل علیه السلام و آشوره خود امام حسین اونا خواهد گفت اونای کرده رو این رو کردن سوال کردید ما خوصه این د ما علاد داریم ما دیناب ما امام باقر صادق داریم کاری می‌کنند با شما با سقوطشون با الحسن و الحسین امامان با ما اوغادا آقا کاری کرده به خدا قسم در زاهدان یکی از مولوی های اهل سنت در سطح بالا و مرید داشت تو یه جلبت یه با بب یزید هر کاری کرده باشه به شیعه خدمت کرد دقتم چه خدمت؟ بب با این کار جوری دست و واکه کرد که ما نمیتونیم روزه بزنیم خدا جایدی هفت بود. یعنی خودی تو می اعتراف بکرد بله اماد حسین کاری کرده یزید دست یکی از این کارا چیه؟ شش ماهه را میگرم تا مردم بفردم خون تکبری وقت یکی از مستشورین سالمون هم نیست راجب اسلام کتابی داره این به فارسی هم ترجمه شده رسمتش همه شنه و کلش هم او در اونجا میگه من وقتی کربلا رو مطالعه میکنم بردیگه سنده ها رو ندارم فقط شهادت علیه ازتر برای من کافیه که ما حسین حق یزید واسه بگه مستشروه بگه چرا؟ میگه برای اینکه بگه برای این که آقا بگید بچیه شش ماه آدم چه دعویی دارم اگه دعواتون دعوای مکتبیه بحث کنید با هم دعوای ملیکیه سر مرس به تون رو هم بیفتید دعوای شخصیه به هم بتازید نه با این خانوادی که هر جوگر مخاربه مخانی خانواده نباشه لذا اونقدر چینه رو تو دل گرفته کشتید صرف بدنها از بازندید چون فیمه ها رو آتش دادید چه بچه ها رو از چیز کردید اونم اطارت تا چه میزان وقتی بچه ها رو میارید پیرکوفه تو خرابه جا میدید عملاً قضاها رو میارن قضاهای خشمزه محتر گرم جلوچشم بچه ها میتوزن میدن به سپاه دشکر یکی که نون و خشک بچه ها نشن میدن به بچه ها یعنی میخوان اینا رو ترور شخصیت کنن اصلا روحیه رو از اینا بگیرن حاصل از اینکه که اینا حساب دیگری دارن کارو بانجا برسونن امام صدیه بفرمایند در این سلام بفرمایم در بین کوپه به شام شدی دیدم ا میکنید برمودن به فهم قضا این که به اصطرانیدن همین بچه ها سیر نمیشن من سه روز فهم دادم به بچه ها قضا نکلدن وقت آف کلدن ماهام یارانیش قضا ندارد اما همین دینه همین دینه قطبه ای در شام میخواند که یزید رو رسوا خیام کرد بتونه پیش بره چهد و شش سال از زمان آمد شام رو پیش بینی کردند برای این که قایدهایی بسازن احل بیتو کنند. کنن اولین مجلس رومده ایمام حسین تو شام درش می شود اولین مجلس رومده ایمام حسین با چی؟ باید ایمام شش ماهرم باید بده به با نقل مختلف یه نقلش هم اینه که آقا وقتی آمده به کنه این بچه رو آوردن بند آن و بچه بیده داره جون میده امام میدونه اونا آف نمیدن و امام میخواست به مردم نشون بده ببینید تو چی ها من مواجهه نماز میکنن بخونن روی افارو نکورید ببینید فکرشون چیه آروانشون چیه دنیاشون چیه امام بچه رو دست گرفت اومد و مقابلی مردم مردم یکمی گوش کنی کنید چه به این درم میدن صحبتم دیشت اگر ماهی را از آف بکرید زنده دیرون اون اولاد که جن داره بالا میترد پایین. در این موقع ماهی را برگردونید تو آب زنده میبونه اینو عرب تلزی نمیده یه مردای میز داره قدرت نداره بین بالا به سر پایین از این فلو برمی‌گرده به اون فلو از اون فلو برمی‌گرده بین فر اینم فلسفی نمیگه ماهی رو در این موقعم برگردون تو آب زنده میمونید وقتی دیگه نیروش نمون اون ماهی فقط دهنش باز ورسته میکنه <تصفيق> در این موقع که ماهی رو بندازی تو آب با باز نمیره می اینو عرب میگه فلسفی امام حسین بر مردم I've said, Allah is the Lord.